هفتم داروها و مخدرهای مغزی و خطرات آنها گاهی اوقات پرزن به خاطر گذراندن یک امتحان میتوان از محرکهای ضعیفی برای سیستم اعصاب که تلاش فکری را تحریک کرده و حافظه را زنده تر میکند استفاده کرد این محرکها به عنوان مثال می توانند قهوه چای کمی غلیز، و یا مواد دارویی که در فصل قبلی متذکر شدیم باشند. در برخی شرایط برای آنکه توجه منحرف شده و به این ترتیب از اینکه ذهن و روحیه به اشتغالات مضر یا بیهوده نپردازد، کشیدن دو یا سه سی سیگار مجاز دانسته شده است. در عوض، جز چند مورد کاملا مشخص و با نظر یک پزشک با تجربه، مصرف مخدرهایی که قادرند مغز را تحریک کنند و یا برعکس آرام سازند به صورت منظم مطلقاً ممنوع است. دکتر پل شوشارد می‌نویسد: محرکها به اندازه کافی خطرناک هستند، زیرا این امکان را به وجود می‌آورند که در یک سرخوشی کامل از حد نیروهای خود فراتر برویم. این عوامل برای تلاش لحظه‌ای بوده و به عنوان عوامل فعالیت مصنوعی محسوب می‌شود. و مسلمن باعث استراحت مغز که مرهم واقعی برای آن محسوب می شود نیستند. در این میان آمین های تقویت کننده یا آمفتامین ها که استفاده از آنها برای محسلین ممنوع بوده و به سربازان آلمانی در سال 1940 امکان استفاده از مواد مخدر از این طریق را داده است بسیار خطرناک هستند. بخش اول رشد مخدرها برخلاف مهرکا، مخدرهای مغزی باعث ایجاد خواب و یا آرامش خاصی میشوند. برخی از آنها مانند باربیتوریکا، خوابی ظاهراً عادی ایجاد میکنند. ولی مصرف معمول آنها برای تعادل روانی تقریبا به همان اندازه خطرناک است که مصرف مهرکا، آرامبخشها و مسکن‌های اعصاب که گاهی اوقات تحت عنوان قرص‌های خوشبختی می می‌شوند. و داروهایی هستند که فشار عصبی، حیجانزدگی و استراب را تسکین می دهند. سرگروه این رشته از داروها کلورپرومازین است که نام تجاری آن لارژاکتیل میباشد. باشد. و چند ماده دیگر از همین نیز متعلق به این گروه هستند. آسپرین و مورفین نیز از داروهایی هستند که برای تسکین درد مصرف می شوند. و سرانجام از میان داروهای مغزی مخدرها را باید نام برد که شخص را در نوعی رویا فرو برده و اغلب باعث ایجاد توهماتی می شود. این تأثیرات با مصرف کوکائین، تریاک، هشیش، ماریجوانا، مسکالین، پیوتل، لیزرژین، پسیلوسیبین و خصوصاً الاسدی به اوج خود میرسند. مجددا تکرار می که تمام این عناصر ام از محرک و آرامبخش و یا توهمزا تنها از طریق تجویز پزشک قابل مصرف است و در هیچ شرایطی نباید خودسرانه با امیدهای واهی از قبیل کارایی فکری بهتر، حافظه قویتر، آرامش و یک تخیل زنده‌تر مصرف شوند. متاسفانه چیزی که خصوصاً نگران کننده است این است که تعداد مصرف کنندگان این مواد بالاخص در میان محسلین و دانش آموزان روز به روز افزایش می‌یابد. مثلا در برخی از مناطق ایالات متحده، هفتاد درصد دانش آموزان دبیرستان الستی مصرف نموده، ماری می‌کشند، هروئین به خود تزریق می و یا کوکائین می‌کشند. آلن بینویست می حوالی سال 1962 در مجله‌ای در ایالات متحده تخمین زده شد که تعداد معتادین به هروئین حدود هزار نفر باشد. اما امروزه آنها قطعاً بیشتر از هزار نفر هستند. در نیویورک بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاهها معتاد بوده و تنها در یک سال ارزش هروئین فروخته شده در این شهر بالغ بر 6.5 میلیارد دلار بوده است. در هنگ کنگ تعداد معتادین به هروئین حدود 150 هزار نفر است و در اندونزی و تایلند جمعیت این افراد به چندصد هزار نفر بالغ می شود. در جاکارتا پایتخت اندونزی که حدود یک میلیون و هزار نفر جمعیت دارد، حدود 300 هزار جوان به صورت مداوم یا گاه گاه از هروئین یا LSD استفاده می کنند. در اروپا الST یا مخدرهایی از این گروه بیداد می کنند. و در اتحاد شوروی تدابیر شدیدی برای مبارزه با مصرف این مواد در نظر گرفته شده که شامل حداقل 15 سال زندان برای قاچاقچیان مواد مخدر و 5 سال برای معتادین می باشد. در صورت بازگشت به اعتیاد این مدت به 10 سال افزایش خواهد یافت حتی در فرانسه که برای مدت طولانی تصور میشد از این آفت به دور مانده، امروزه بخش مهمی از جوانان از مواد مخدر استفاده می کنند. آمارهای پلیس فرانسه دستگیری هایی که به دلیل مصرف مواد مخدر انجام میگیرد هر سال افزایش یافته و گاهی اوقات تعداد آن تا ۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان میدهد. به گفته مقامات فرانسوی 20 درصد از محاصلین سالهای آخر متوسطه در فرانسه هشیش کشیده یا میکشند و در عین حال پنجاه درصد از محاصلین میدانند چگونه میتوان این ماده را تهیه کرد. دکتر اولیون اشتاین پزشک بیمارستانهای روانی می نویسد سن شروع مصرف مواد مخدر امروزه بین 14 تا 16 سالگی در نوسان است و طبق نظریه پروف دونیکر متخصص اعصاب و روان و رئیس این بخش در بیمارستان سنت آن، اکثریت عظیمی از معتادین بستری شده سن نشان بین 18 تا 22 سال می باشد. ام دانیل هوفل وزیر امور اجتماعی در ژانویه سال 1980 اعلام کرد مصرف مواد مخدر به صورت بومی در فرانسه آغاز شده و وخامت وضعیت در بسیاری از استانها از آنچه که تصور می‌کنیم بیشتر است. اضافه می‌کنیم که جوانان معتاد دیگر منحصراً فرزندان روشنفکران، هنرمندان یا افراد ثروتمند نیستند، بلکه روز به روز با وفور بیشتری در میان فرزندان کارگران نیز رشد می‌کنند. در واقع مواد مخدر در فرانسه عمومیت پیدا کرده است. پس از این مقدمه که برای هوشیار ساختن خانندگان از نظر مصرف مواد مخدر ضروری بود، حال به تشریح ناراحتی‌های های فیزیولوژیکی و روانی که بر اثر مصرف مخدرهایی که بیش از دیگران معمول هستند، نظیر آمفتامین ها، باربیتوریکا، کوکائین، تریاک، هشیش، ماریجوانا، پیوتل و الاستی ایجاد می شود می پردازم. بخش دوم آمفتامین ها. آمفتامینها که گاهی اوقات آمین های بیداری نیز نامیده می شوند و از معروفترین آنها میتوان از بنزدرین یا دکسدرین نام برد، داروهای مشابه افدرین هستند که به خاطر ساختار و طریقه تأثیرشان باعث ترشوه آدرنالین می شوند. این ماده است که توسط بخش مرکزی قده فوق کلیوی و همچنین توسط قسمتهای انتهایی شبکه های عصبی سمپاتیک ترشوه می شود. آنها محرک سیستم مرکزی اعصاب بوده و در آمریکا رانندگان وسایل نقلیه سنگین از آن استفاده می‌کنند تا بتوانند به مدت طولانی تری بدون استراحت رانندگی کنند. از سوی دیگر جوانان و معسلین نیز از این مواد همراه با سایر مخدرها استفاده می‌کنند تا بتوانند تمرکز روانی و حافظه بهتری برای به پایان رساندن کار فکری خود در یک مدت کوتاه داشته باشند. اینان همچنین از آن برای ایجادی نوعی نشعه خوشایند نیز استفاده می‌کنند. متاسفانه مصرف بیش از حد آمفتامین‌ها باعث ظهور رفتاری شبیه به کسانی که دچار اسکیزوفرنی یا جنون پیشرست و پارانویا، نوعی جنون مزمن که قوه تشخیص و منطق را مختل می‌سازد، هستند می‌گردد. در این حالات اشتها کاهش یافته و شخص در دنیای خطای حسی زندگی می‌کند. ممکن است توهماتی شبیه به یک فرد الکلی مبتلا به دلیرومترانس یا کسی که از خوابیدن محروم شده است نیز در شخص به وجود بیاید. در این شرایط بسیاری از افرادی که تحت تاثیر آنفتامین قرار دارند اقدام به مصرف آرام بخش می کنند تا بخوابند. در حالی که این کار تنها مسمومیت جدیدی را به مسمومیت قبلی می دکتر اولیون اشتاین می نویسد بایستی همه چیز را گفت. هیچ گونه احتمال مثبتی از طریق مصرف ها وجود ندارد. البته اگر نخواهیم از اتفاقات جسمی خطرناک نظیر ایجاد هپاتیت بر اثر استفاده از آن و مسمومیت ناشی از آن، ناراحتی‌های ریوی و اشکالات گوارشی و خصوصاً اتفاقات عصبانگیز روانی را که آمفیتامینها به وجود می‌آورند و از واکنش‌های استرابامیز تا روان‌پریشی‌های نیمه هاد و مزمن سخن بگوییم، در حال حاضر چه در ایالات متحده و چه در فرانسه مصرف ها در حال تبدیل شدن به مشکل اساسی افراد نوجوان و معتادین به آن میباشد. بخش سوم باربیتوریک‌ها باربیتوریک‌ها موادی هستند که از اسید باربیتوریک که خود یکی از مشتقات اوره است و می توان آن را از طریق تأثیر اسید مالونیک روی اوره در کنار یک انصر جذب کننده آب به دست آورد، تولید می شوند. مهمترین مشتقات اسید باربیتوریک عبارتند از ورونال و فنوباربیتال که به عنوان دارو از آنها استفاده می شوند. این دو ماده داروهای خواباور قوی هستند که دارای تأثیر نسبتا سری بوده و در بیخوابی عصبی و همچنین علیه لرزشهای اسکلوروز قطعی به کار می روند. جذب بیش از حد یا طولانی باربیتوریکا باعث ایجاد اختلالات روانی و عصبی می شود که به نوبه خود ناراحتی های شخصیتی، تحریک پذیری، حالت تهاجمی نسبت به اطرافیان و یا برعکس کاهش حالت حیجان پذیری، تا مرحله ایجاد توهمات از بین رفتن قدرت فکری و فلج فضاینده و سرانجام اغما را به وجود می آورد. دکتر کریستیان گیلمول که پروفسور احساب و روانپزشک دانشگاه استانفورد آمریکاست در این رابطه می گوید، اگر یک قرص 300 میلیگرم باربیتوریک به صورت منظم هر شب و به مدت یک هفته مصرف شود، خواب طبیعی را کاملا مختل میسازد در این حالت، ساختار دورعی خواب به طور کامل از بین رفته و حالتی گم پیدا می و رویاها نیز کاهش می‌یابند. امواج مغزی در الکتروانسفالوگرام تغییر کرده و تعداد ساعتهای بیدار کننده کوچک افزایش می‌یابد. حتی اگر شخص هیچ یادآوری یا اندیشه برای بیداری در ذهن خود نداشته باشد. از نظر جسمی، باربیتوریکها باعث ایجاد خارش که گاهی شدید نیز میشود، تحریکات پوستی مختلف، ها، شفراوماتیسمها، های کلیوی و کبدی میشوند. مسئله‌ای که ظاهر متضادی با خواص این مواد دارد، این است که زیاد روی در مصرف باربیتوریکها میتواند باعث بیخابی شود. اضافه میکنم که همکنون مصرف باربیتوریکها به صورت سرسام‌آوری، چه در بزرگسالان و چه در جوانان افصایشی یافته است؟ گزارشی که مؤسسه ملی بهداشت در این مورد ارائه کرده نشان می دهد که سی میلیون آمریکایی از باربیتوریکا استفاده می کنند. در فرانسه نیز تعداد افراد بیخوابی که از این مواد استفاده می کنند بسیار زیاد است و تخمین زده می شود که هر شب دو میلیون و 800 هزار فرانسوی با کمک یک باربیتوریک به خواب میروند. بخش چهار کوکائین کوکائین آلکالوئید اصلی برک های درخت کوکاست که در رشتکوهای آند، پرو، بولیوی، کولومبیا می روید. این ماده در سال 1860 کشف شد. کوکائین را همچنین از طریق سنتز جزئی آگونین که خود از آلکالوئیدهایی است که از کوکاهای مختلف به دست می جدا می سازند. نام شیمیایی کوکائین متیل بنزوئل اگونین می باشد در درمان پزشکی از آن به عنوان بیث موضعی و همچنین آرام کننده دردهای آنژینی و نزله ها و رمهنجره دهان یا حلق و خارشهای شدید به کار میبرند و کاربرد کوکائین نیازمند احتیاط زیادی بوده و بایستی از داده های دقیقی که از طریق مشاهدات به دست آمدهند استفاده کرد زیرا جذب پنجه صدم گرم خالص برای یک انسان مرگاور خواهد بود. کلات کوکائین که به صورت پودر سفیدی است، معمولا توسط افراد معتاد از طریق بینی استعمال می شود. دکتر اولیوین اشتاین می نویسد، نشعه دارای سه مرحله است. ابتدا حالت سرخوشی همراه با کاهش هر نوع بازدارندگی در مرحله بعد، اختلال همراه با فعالیت توهمزایی خصوصاً خصوصا از نظر بینایی، تصاویری با نقاطی که دائما در حال حرکت هستند و پس از آن خواب آلودگی به وجود می‌آید. در صورت مصرف دائمی کوکائین، ناراحتی‌های حافظه و حیجان پذیری و استراب، نوسانات و برهم خوردن خلق و خو و همچنین ناراحتی‌های عصبی، حرکات غیرطبیعی طبیعی صورت، پرش عضلات یا تیک افزایش حساسیت شنوایی و غیره، لاغر شدن به مقدار زیاد و ضعف تدریجی دیده خواهد شد. به طور خلاصه، اعتیاد مزمن به کوکائین به تدریج باعث از بین رفتن قدرت فکر، احساسات و جسم خواهد شد. بخش پنجم ترگاک تریاک خالص شیره است که از گرز یک نوع خشخاش خاص که به آن خشخاش سفید نیز گفته می شود به دست می آید. که این ماده دارد به دلیل تعداد زیادی از آلکالویت های گروه مورفین شامل مورفین، کدئین، تبایین، پاپاورین، نارسین و آلکالویت های نارکوتین شامل نارکوتین و لااداتوزین است. اولین گروه این آلکالوید ها خواباور و بیهس کننده بوده و از طریق فلج کردن سیستم اعصاب مرکزی عمل می و گروه دوم آرامبخش و تختیر کننده هستند. استعمال کننده ی تریاک به نوعی لذت سیاحت مانند و لذتی آرام همراه با نوعی تحیج تخیلات دچار می شود. ولی در میان دو وعده استعمال آن کوفته سست و بیحال شده و گفتار و حرکات وی کاهش میابد. دکتر اولیوین اشتاین در این مورد می "ضعف و نظاری آن مرگاور نیست ولی تدریجا اختلالات خواب به وفور اتفاق افتاده و گاهی اوقات شخص در حالت بیداری به صورت دائم به رویا فرو رفته و توهماتی واقعی برایش به وجود میآید. بنابراین این مصرف تریاک به صورت منظم بسیار خطرناک است. در کنار تریاک یعنی در همان گروه می میتوان از مورفین و هروئین نیز نام برد. همان گونه که متذکر شدم مورفین آلکالوئیدی از تریاک بوده و در موارد درمانی همان کاربوردی را داراست که تریاک دارند. ولی در میان افراد معتاد این ماده را بیشتر برای رفتن به سوی هروئین رها میکنند. هروئین یا دیمورفین یکی از مشتقات مورفین است که دو تا سه برابر از آن فعال تر است. این ماده را به صورت استنشاق یا به صورت تزریقی مورد مصرف قرار می دهند. مصرف هروئین سریعا اعتیادآور است و از طریق پدیده های تحریک روانی مشخص می گردد. در حال حاضر در فرانسه مصرف آن در روش های درمانی منع شده است. اما آمار معتادین به هروئین در بین جوانان فرانسوی پنج به یک است بخش ششم هشیش هشیش که نام آن از زبان عربی به معنای درخت گرفته شده است رزین اصاره برکا و غنچه های هندی است که به تیره گزنه متعلق می باشد این ماده به دلیل وجود آلفالوئیدی به نام کانابین در آن می باشد و نام شیمیایی آن تتراهیدرو است در اینجا مراحل مختلفی که از طریق جویدن یا کشیدن هشیش ایجاد می شود، طبق نظریه پزشک بیمارستان بیستر در شهر تور ذکر می کنیم. 1. یک حالت سرخوشی و نشاط همراه با احساس خوشبختی برای برخی از مصرف کنندگان. 2. نوعی تحریک فکری همراه با اغراق در احساسات و در نهایت تجزیه افکار از یک دیگر. سه تغییراتی در درک زمان گذشته و فضا چهار تغییر در حسه شنوایی خصوصاً در رابطه با شنیدن موسیقی 5. تشکیل اندیشه ها و افکار ثابت که معمولاً از طریق دنیای خارج به شخص تحمیل می شود 6. تحریک بیش از حد احساسات و تغییرات خاصی در حالات حیجانی 7. محرکهایی که غالباً به تلقینات مربوط می شود. هشت توهمات و خطای حسی و سرانجام مصرف معمول آن منجر به جنون خواهد شد. به نظر دکتر سرژ لو بویسی پزشک بیمارستانهای پاریس و رئیس سابق انستیتوی روانکاوی نقش هشیش در فرانسه در اجتماعات جوانان دانشگاهی هنوز نقشی اساسی است. بخش هفتم ماری جوانا. ماری جوانا یا ماری هوانا نوعی شاهدانه نزدیک به شاهدان هندیست هندی است که در آمریکای شمالی از دوران نچنددان دور مورد مصرف قرار میگیرد. این گیاه نیز همان ناراحتیهایی را ایجاد می کند که هشش به وجود میآورد. مصرف ماری جوانا در جوانان آمریکایی بسیار گسترده است. یکی از مجلات آمریکایی در این مورد می نویسد مهمانی هایی که محصلین مدارس یا دانشجویان تشکیل بدهند و در آنها ماری جوانا مصرف نشود بسیار کمیاب است. کشیدن این مخدر در میان جوانان امروزی ایالات متحده به همان اندازه عادی شده است که تا چند سال پیش نوشیدن یک لیوان آبجو معمول بود. امروزه دیگر خاتمه دادن به یک جلسه درس با کشیدن ماریجنا در میان دانشجویان امری غیرعادی نیست. از سوی دیگر بنابر بر نظریه ام آلن پیرفیت در برخی از مدارس فرانسه سه چهار روم رم محصلین سیگارهای ماری جوانا می‌کشند و این در حالی است که ماری جوانا ماده‌ای بسیار سمی است آقای ناهاست در یک اعلامیه که در 18 ژوئن سال 1974 از سوی آکادمی پزشکی منتشر شد اعلام کرد در مصرف کنندگان قدیمی ماریجوانا مسونیت سلولی که عمل لنفوسیت های تی، یعنی گلوبولهای سفیدی که کار آن مبارزه با افونت های ویروسی و سلول های خارجی بدن که بر اثر سرطان یا پیوند اعضا به وجود می‌آید میباشد می باشد، آسیب دیدگی می علاوه بر آن طبق نظریه همین نویسنده، در میان مصرف کنندگان ماری افزایش قابل لمس آسیب ژنتیک، و خصوصا شکستگی کروموزوم ها به چشم می خورد. بخش هشتم پیوتل پیوتل کاکتوس کوچکی است که در مرکز و شمال مکزیک می روید. این گیاه دارای چندین آلکالوید است. این مخدر باعث ایجاد نوعی مستی خاص و خصوصا توهمات رنگی میگردد که آنها را خصوصا در تاریکی و یا هنگامی که چشم بسته باشد میتوان دید. به همین دلیل برخی از قبایل بومی مکزیک آن را گیاهی که چشمها را به تحسین وامی دارد می‌نامند. مصرف پیوتل هم مانند تریاک، هشیش ماریجوانا و سایر مخدرهای این گروه خطرناک بوده و در آمریکا و مکزیک ممنوع شده است. بخش نهم LSD و سرانجام از میان مخدرهایی که آنها را در این فصل مورد بررسی قرار داده‌ایم الستی یکی از خطرناکترین آنهاست. الستی که مخفف لیزرگامید یا حروف اول لیزرژیک سوئر و یا تیلامید می باشد در سال 1943 توسط حفمان در آزمایشگاه ساندوس ساندوز کشف شد. این انصار نیمه مصنوعی مادهی مشتق از اسید لیزرژیک است که آن را از زنگ چاودار استخراج می کنند. زنگ مزبور قسمت میوه دهنده انگل خوشه چاف است. این ماده در افرادی که آن را مصرف می کنند، نوعی بینایی عجیب رنگی به وجود آورده و به آنها احساس حرکت کردن در زمان میبخشد. تحت تأثیر الستی، محیط پر از رنگهای درخشان و متغیر می شود. که شخص در حال نگاه کردن به آن است، در استوانه ای از تصاویر زیبا فرو رفته و صحنه‌های زندگی گذشته در نظر وی بسیار واقعی جلوه می کنند. و سرخوشی نیز از نشانه های متمایز تأثیر الستی است. در واقع این ماده در دراز مدت باعث از بین رفتن آگاهی و شخصیت فرد می شود و شخص معتاد را گهگاد دچار اختلال روحی، حالت رویایی پایدار و گاهی اوقات، تحت علائمی از نوع اسکیزوفرنی می میکند به همین دلیل برخی از روانپزشکان آن را بمب اتم مغز نامیدند به هر حال معتادان به این ماده گوی سبقت را از معتادان به سایر مواد مخدر نظیر هشیش ماریجوانا هروئین كوكائین و غیره رو بوده اند این ماده در اوایل تحت نظر یک پرفسور دانشگاه هاروارد به نام تیموتی لیر که با شاگردان خود انواع مخدرهای توهمزا نظیر پسیلوسیبین، پیوتل و سرانجام الستی را آزمایش میکرد به کار رفت و پس از آن به سرعت در میان دانشجویان آمریکایی گسترش یافت. الستی سپس وارد اروپا شد و در آنجا همانطور که مارتین آلن رگنو می در اختیار بسیاری از جوانان قرار گرفت. آنان به مخدری دست یافتند که خطرناکترین نوع آنها شناخته شده بود. متاسفانه چون قیمت آن ارزان است به سادگی در اختیار همه قرار می‌گیرد. سوای تخریب شخصیتی که مطرح کردیم، الستی در کوتاه یا دراز مدت یک رشته ناراحتی فیزیولوژیک و روانی را نیز ایجاد می کند که تعدادی از آنها بسیار خطرناک هستند. این ماده باعث تحول، لرزیدن، اختلالات تنفسی و عصبی، میل به خود تخریبی و خودکشی و حالات اغمام می شود. و بالاخره آزمایش های انجام شده روی حیوانات، موش موش هامستر نشان داده که الستی باعث تخریب کروموزومی شده و در دوره خاصی از بارداری باعث نقص اوصفهای شدید جنینی می شود. به عبارت دیگر، در این دوره باعث ایجاد حیولاهایی خصوصاً با متوقف شدن رشد دست و پاها می شود. این نیز می افضایم که این ماده حتی در مقادیر میلیونیوم گرم نیز فعال است، به صورتی که در افراد معتاد هر گونه اشتباهی در مورد اندازه آن میتواند تواند تأثیرات قابل توجهی داشته باشد. ماده مادهای بسیار خطرناک است. کسانی که به این مخدر عادت می کنند، پس از آن که 5، 10 یا 20 بار در بیمارستان‌های روانی تحت درمان اعتیاد خود قرار می‌گیرند، مجدداً به آن روی میآورند. در خاتمه این فصل که به مواد مخدر اختصاص یافته بود، متذکر می‌شوم والدین باید به صورت جدی برای مبارزه با عادی شدن اعتیاد اقدام کنند. به هر حال اینان می‌توانند در صورتی که در فرزندان خود علائم زیر که در جوانان معتاد به سرعت بروز میکند مشاهده کردن به وضعیت او توجه بیشتری داشته باشند این علائم عبارتند از ناراحتی های روان متنوع فرار های مکرر نتایج بد تحصیلی نسبت به نتایجی که فرزندشان قبلا به دست میآورده است بدبینی استراب فکر خودکشی یا حتی اقدام به آن